سلام علیکم حال شما چطوره ببینید این مطلبی که از مرحوم امام موسا صدر شهید امام موسا صدر رضوان الله علیه نقل شده اولا راوی این ماجرا کیه راوی ماجرا یکی از افراد نزدیک به دربار پادشاه هست نزدیک به دربار شاه هست ایشون مدعی هست که در چه سال امام موسا صدر رو دیده به این حرف رو از امام موسا صدر شنیده 1352 یعنی پنی سال قبل از اینکه، نهزت امام خمینی فراگیر بشه و خب میدونید اوجگیری نهزت امام خمینی در سال 56 و 57 بوده که رژیم متزلزل شد، همه شهرها تظاهرات شد. قبلش انقلابی‌ها خیلی‌هاشون وقتی دستگیر می‌شدن یا وقتی با مأمورین رژیم برخورد می‌کردن، تقییم می‌کردن و اظهار میکردن که ما اصلا انقلابی نیستیم یا اگه مثلا شدن، بازداش می‌شدن توی بازداشت یا توی زندان تعهد امضا می‌کردن که برضد شاه حرف و اینجوری از زندان بیرون می اومدان دوباره بیرون کار خودشون میکردن یعنی شرایط شرایطی بود که مردم نمیتونسن حرفشون رو صریح بزنن چون صریح به شدت مجازات می شدن یا اعدام میشدن در یه چنان شرایطی که شرایط شدید تقیه بوده این آقا که از مامورین رژیم شاه بوده و ادعا میشه که دوست قدیمی امام صدر بوده میره دیدار امام موسی حالا ایشون است که امام به او گفته است که کتاب ولایت فقیه به عربی چاپ شده و به عربی واسه ترجمه شده میدونه اصل کتاب بلاطقی فارسیه به عربی ترجمه شده و رسیده به دستش در لبنان و امام صدر طبق ادعای این آقا بهش گفته که این حرفا حرفای آدم دیوون است این که مثلا یه اخوندی بخواد حکومت کنه این حرف دیوون است و من به پیشنهاد میکنم به شاه بگی که 200 هزار نسخه از این کتاب چاپ کنه که مردم بفهمن که اینا چقدر احمقن و چقدر دیونن و تو دانشگاه این کتابا رو منتشر کنن این خودش باعث میشه که زیرا به بخوره و روشن فکرها و دانشگاهی و اینا مردم از خمینی ناامید بشن و خب این حرف امام موسا بر فضلی گفته باشه یک فریبه این یک فریبه ببینید امام موسا یک نابغه بود از نظر سیاسی آدم زیرکی بود عمدن این حرف رو میزنه به اون شخص چون اون شخص فرستاده شاهه چون اون شخص از دربار شاه آمده و امام موسا برای اینکه شیعیان جنوب لبنان رو تامین کنه از نظر اقتصادی از نظر سیاسی حمایت سیاسی و اقتصادی بره اونها جلب کنه روابطش رو با دربار شاه خوب می کرد امام موسا صدر امدا با دربار شاه روابط خوبی برقرار می کرد البته شاه هم چشم دیدن امام موساسدر رو نداشت امام موسا صدر هم چشم دیدن شاه رو نداشت اما در ظاهر سعی می‌کردن تعامل کنن. در ظاهر تظاهر می‌کرد امام صدر که با شاه مشکل نداره تا تا سال 56 تا سال 56 امام موساساد شیوهش این بود هیچ اقدامی در ظاهر بر زد شاه نمیکرد. بلکه در ظاهر ممکن است که حتی تظاهر به مخالفت با امام خمینی هم کرده باشه در ظاهر چرا به خاطر اینکه امام موساساد محل کارش لبنان بود در لبنان آوردن اسم امام خمینی در بین شیعیان تقابل با شاه باعث میشد که شاه های مالی و سیاسی که از شیعیان لبنان در اون زمان میکرد، شاه بعضی پولا رو می شیعان لبنان یعنی اینکه الان میگن که جمهوری اسلامی پول مردم میده به لبنان نه آقا این مال الان نیست زمان شام بوده زمان شاه بوده ولی خب نوعش فرق داشته و به هر حال امام موسس صدر نیاز شیعیان جنوب لبنان به حمایت مالی کشور بزرگی مثل ایران رو تشخیص داده بود و برای اینکه شیعان لبنان رو تأمین کنه روابط خوبی با دربار شاه داشت این واقعیته برای اینکه این روابط رو حفظ کنه سعی می کرد خودش رو از مسائل داخلی ایران که امام خمینی در ایران بر ضد شاه حرف میزد سعی می‌کرد خودش رو جدا کنه و ممکن است در جلسات خصوصی با فرستادگان دربار شاه، با های دربار شاه یک چیزی بر ضد امام خمینی هم بگه، بگه ایشون است. خب چرا این حرفو میزنه به خاطر اینکه به شاه بفهمانه که من با خمینی نیستم. پس حمایت مالی خودت رو از شیعیان جنوب لبنان که تحت رهبری من هستن در لبنان حمایت خودت رو ادامه بده امام موساساد این شیوه رو ادامه داد تا سال 56 سال 56 وقتی مرحوم شریعتی فوت کردند و آقا مصطفی خمینی هم فوت کردند و مردم یه خیزش عمومی داشتن و دیگه شرایط به نحوی شد که امام موساساد دید که الان وقتش نیست که دیگه تقیه کنیم باید محکم جلوی شاه ایستاد امام موساساد این کار کرد و علنی صحبت کرد بازرده شاه رژیم شاه رو به قتل مرحوم شریعتی متهم کرد و گفت من درسته که مثلا ایران بودیم و شناسنامه ایرانی داریم اما این شناسنامه ایرانی من چون ایشون شناسنامه اش ایرانی بود دیگه ایشون مثلا بزرگ شده ایرانه ایشون تا مقطع لیسانس در ایران درس خونده توی دانشگاه ایران لیسانس گرفته بزرگ شده قومه بابا از مراجع قوم بوده بعدها مثلا در فرض کنید 30 سی 35 سی سالگی پا میشه میره لبنان تازه مثلا حرف زدن به عربی رو اونجا توی لبنان به تدریج یاد میگیره تا آخر عمر شریفشون هم عربی حرف زدنشون با تلعجه فارسی بود و با غیر اشتباهات زریفی هم حتی تو مکالمه مرتکب می‌شدند که خب برای عرب‌ها شیرین بود که یه ایرانی اینجوری عربی حرف میزنه یه جایی اشتباهات ظریف و با نمکی هم داره اما محتوا داره حرفش اما خودشی انسان واقعاً انسانیه که روحیات رهبری داره خب اما موسسد سال 56 وقتی مرحوم شریعتی فوت کردن و همه به این یقین رسیدن که شریعتی کشته شده شریعتی مسموم شده در خارج از ایران به دست سواک این باور عمومی بود در بین دانشگاهی و در بین نخبگان امام در بعد از این ماجرا در دفاع از منحوم شریعتی صحبت کرد و بر ضد شاه حرف زد و گفتش این شناسنامه ایرانی من آره فکرم شناسنامه ایرانی یا حالا مثلا پاسپورت ایرانی خودشون رو که عکس تاج شاه روش بود این رو آتش زد این رو جلوی جمعیت آتش زد خب اینایی که میگن امام موساسد طرفدار شاه بود این هم بگن. بنابراین امام موساسد چند مختع داره در فعالیت‌های خودش. در یه برهی که هیچ امیدی به پیروزی انقلاب امام خمینی نبود و یه اقلیت کوچکی دنبال امام بودن هم, هم یا تو زندان بودن یا تو تبعید بودن یا فراری بودن تو نجف فراری بودن تو سوریه این ور اون ور در اون بره خب امام موساسد علنن از امام خمینی حما یه برهی هست سال 1356 و 1357 یعنی دو سال آخره قبل از پیروزی انقلاب وقتی که شریعتی فوت میکنن و فوتشون مشکوک هست و همه میگن ایشون کشته شده اماموسوساد جلو شاه میست علنی هم میرسته و بعد که میره لیبی دیگه کشورهای عربی که با اماموسوساد مشکل داشتن سران عرب که با اماموسا مشکل داشتن چون میدانستن که امام موسسادر با شاه در افتاده و دیگه شاه ازش حمایت کنه امام موسسادر رو به شهادت رسونده که حالا البته هنوزم شهادتش یعنی پیکر ایشون پیدا نشده ولی خب تو خاطرات حسین مبارک و بعضی از شخصیت هایی که از مسائل اون موقع باخبرن میگن که قذافی رئیس جمهور وقت لیبی امام موسسادر رو به شهادت رسونده و ادعا کرده که نه از لیبی رفته است به مثلا ایتالیایی این رو هم عرض کنم امام موسسادر یک فقیه ترازه اول شیعه نیست من نمیگم ایشون مشتهد نیسته، نه ایشون مشتهده ایشون طلبه باسوادی بوده اما حدود تا حدود سی سی و سالگی تو حوزه علمی درس خونده مثلا سه چهار سالی هم فکر کنم تو نجف درس خونده به نمایندگی از منحوم اطلاع برو جردی و منحوم حکیم پا میشه میره لبنان و اونجا رهبری شیعان لبنان رو بر اهده میگیره و اصلا امام موساسعد تألیفات آنچنانی نداره مثلا بگید ایشون رساله تبیین المسائل داره یا کتابی نوشته امام خمینی فقیه است که این همه کتاب فقهی نوشته این همه شاگرد پرورش داده این همه درس خارج فقه و اصول داشت اصلاً از نظر فقهی این دو نفر قابل قیاس نیستن امام موساسعد از نظر فقهی شاید در ردیف یکی از شاگردان درجه دو امام خمینی باشه از نظر اون معیارهایی که معیار‌های علمی که تو حوزه علمیه هست الان توی دانشگاه مثلا یک دانشجوی فوق لیسانس با یک پروفسور قابل قیاس نیست. یه درجاتی ما داریم. این دانشجوی فوق لیسانس باید چند تا مقاله علمی زیر نظر چند تا پروفسور بنویسه، بعد دکتراشو بگیره، بعد از دکترا دوباره چند تا مقاله زیر نظر اساتید برجسته بنویسه، بعد کم کم بعد چند سال چقدر تدریس، چقدر نوشتن، تازه میشه پروفسور. امام موسى صدر، من اینکه بگیم آدم کم سوادی بوده، نه کم سواد نبوده، اما فقیه تراز اول نیست. یکی از علمای تراز دوم و سوم شیعه و به اینکه بهش میگن امام موسى صدر به خاطر جایگاه سیاسی ایشون هست به خاطر نقش مهمی است که ایشون در زنده کردن شیعیان لبنان داشت. که خب به یک معنا ایشون ایشون بود که نطفه حزب الله لبنان رو گذاشت. مثلا الان سید حسن نصرالله، سید حسن نصرالله شخصیتی البته شخص سوادش از نظر علمی ظاهرا مجتهده یعنی سواد علمیش و حوزه کمتر از امام موسى صدر نیست ولی در حد مرجعیت که نیست که نمیشه شما بگی سید حسن نصرالله مثلا در حد آیت الله مکارمه یا در حد آیت الله خامنه یا در حد آیت الله سیستانی است نه اینجور نیست سید حسن نصرالله اگر بگیم یک مشتهد و یک فقیه است یک فقیه و مشتهد درجه دوم است نه درجه اول تراز اول نیست امام جور بود اما امام موساسد یک سیاستمدار اول در لبنان بود. یک تراز اول در لبنان بود. در حوزه علمیه شیعه یک شخصیت علمی تراز دوم و سوم حساب می‌شود. تعلیفات فقهی نداره. تدریس خارج فقه و اصول نداره. اینکه بگی مثلا امام موساسد 20 تا شاگرد تربیت کرده که همشون بعدا مجتهد شدن، نه اینجور نیست. اما مثلا آیتالله ازمای خویی، آیتالله سب محسن حکیم، امام خمینی، اینها همشون تعلیفات فقی و اصولی دارن و شاگردانی دارن که شاگرداشون بعدا مرجع شدن. شاگردان تراز اول دارن که هر کدوم از اونا از نظر علمی شاید از اماموساست کمتر نباشن، بالاتر باشن. بله ما داریم که مثلا شهید بهشتی نقل میکنه که اماموساست قبل از آن این که بره به لیبی به اون سفر بی بازگشت دیگه از اون سفر بر نگشت و گفتن امامی که ناپدید شده که البته واقعیت اینه که ایشون دیگه شهید شده. یه نمیشه گفت اون الان زنده است. قبل از انقلاب اسلامی ایشون میره لیبی دیگه بر نمیگرده. مدت کمی بعد از آنی که با شاه در افتاد ایشون در سفری که به لیبی میره دیگه ناپدید میشه. و شاید دست رژیم شاه هم در شهادت و ناپدید شدن ایشون دخیل بوده. به هر حال شهیدش میگه امام موسویال قبل از آنی که بره تمام مطالبی که من پای درس امام خمینی نوشته بودم یعنی درس فقه یا درس خارج فقه یا خارج اصول امام خمینی رو که من برای خودم به عنوان شاگرد پیاده کرده بودم جوزوه های من رو از من گرفت که ببرم مطالعه کنه و دیگه ایشون آپدیت شد و نتوانست به من برگردونه خب شهید بهشتی دو سه سال بعد به شهادت میرسن سال 1360 ببینی این نشون میده که امام موسسات امام خمینی رو یه فقی و علاقه داشته که از محتوای درس‌های هم بهره ببره بنابراین جزواتی که شهید بهشتی پای درس امام خمینی نوشته بود و از شهید بهشتی میگیره که مطالعه کنه بعد بهش برگردونه بعد می‌دونید که امام موسا صدر یکی از بازوگان اصلیش در لبنان شهید چمرانه شهید چمرانه خب بعد از آنی که امام موسى صدر ناپدید میشه شهید چمران چه میشه شهید چمران میاد در امام خمینی. میاد میشه وزیر دفاع جمهوری اسلامی چه وزیر دفاع جمهوری اسلامی فرمانده گروه های پارتیزانی و در جبه های ایران به شهادت میرسه همون چمرانی که به امام موسا صدر میگفت امام موسا و شیفته امام موسا صدر بود بعدا میشه شیفته امام خمینی پس اینها در تناقض با هم نبودن و اگر امام موسا به یکی از معمورین رژیم شاه به یکی از کارکنان دربار شاه گفته باشد که کتاب ولایت فقیه یک کتابی که دیوانه نوشته و این رو شما چاپ کنید و بین دانشجوها پخش کنید این یک نعل وارونه این یک نعل وارونه یک فریبه و در واقع میخواد به شاه بگه که بابا پخش شدن این کتاب انتشار این کتاب به ضررتو نیست بیخیال شو اصلاً اگه من جای تو باشم خودم پول میدم کتابو چاپ کنن 200 هزار نسخه بین دانشجوها پخش کنن چون این خودش زره برای خمینی نیست. در حالی که خب واقعیت اینه که اینجور نیست واقعیت اینه که رژیم درست فهمیده بود کتاب ولایت فقی خطری بود برای رژیم الان هم هرکی کتاب ولایت فقی رو بخونه کتاب محکمی است کتابی است که نوشته یک دیوانه نیست نوشته یک انسان اندیشمند دوراندیش هست و تحولات جامعه هم همین رو اثبات کرد وقتی امام خمینی درس ولایت فقی در نجف میگفت خیلی‌ها فکر می‌کردن این حرف‌ها عملی نیست اما بعد از چند سال این عملی شد یعنی تحولات جامعه ثابت کرد اتفاقاً این میشه و در ایران آخوند آمد رو کار، بلاط آمد رو کار، اما اینجور نبود که جامعه را از پیشرفت علمی باز بداره. اینجور نبود که جلوی انتخابات و جلوی رأی مردم بگیره. نه اتفاقا آخوند آمد گفت برید در انتخابات شرکت کنید و شرکت در انتخابات لازم است و واجب است. اینجور نبود که بگه که مثلا خانم ها در مسائل اجتماعی نباشند. گفت خانم ها بیان رأی بدن، خانم ها اصلا کاندید بشن، نماینده مجلس بشن، وزیر بشن. به برکت ولایت فقی در ایران انتخابات آزاد نهادینه شد حقوق زن در ایران این که الان خانم ها میارن توی مسابقات المپیک مدال میارن قبل از انقلاب چقدر بود چند تا مدال المپیکی قبل از انقلاب داریم که خانم های ایرانی آورده باشن ظاهرا هیچ نداریم هیچ مدال هایی که خانم ها در مسابقات ورزشی بین المللی آوردن بعد از انقلاب چندین برابر هست خب این اینها همون هستن که شما گفتید که مرتجع هستن فکر دارن فکر کوهنه پرستی و سنتی و قدیمی دارن. این چه کوهنه پرستیه که دختر ایرانی میره در المپیک مقام میاره. آقای خامنه ای در تلویزیون میبینه که این خانم موقعی که میخواد داره مدالش بگیره. چادر میپوشه میره بالای سند. مدالشه میگیره آقای خامنه ای به عنوان مرجع شیعه که دشمنان شیعه و دشمنان دین میگن خامنه ای مرتجع و سنتی و خرافاتی و عقب مونده است آقای خامنه ای میگه من سجده شکر کردم وقتی دیدم دختر ایرانی با حجابش مدال و بالای سر دریافت کرد و ما رو سربلند کرد پیروزی دختر محجب ایرانی به عنوان سربلندی حساب میشه این همه دختر دخترخانوما در بعد از انقلاب سوابق دانشگاهی دارن این همه مدرک دکترا دارن مدرک فوق لیسانس گرفتن قبل از انقلاب 90 درصد دخترای ایرانی سواد خواندن نوشتن نداشتن سواد خواندن نوشتن نداشتند. بعد از انقلاب ببینید 60 70 درصد دانشگاه های ما دخترانه هستند. هستن این نتیجه ولایت فقیه نتیجه ولایت نتیجه رژیم شاه نیست رژیم شاه کاری کرده بود که متدین ها برای فرستادن دخترهاشون به مدرسه مشکل داشتند. چون میگفتم که اگر دختر ما بخواد سالم بمونه هم نمیتونه سالم بمونه توی این دانشگاه فاسد توی این مدارسی که به زور میخوان بچه های ما رو فاسد کنن بدین کنن خیلی‌ها میرفتن دانشگاه بیدین میشدن کمونیست میشدن مرتد میشدن های ضد دینی در اون زمان مثل نقل و نبات در دسترس دانشجوا بود اما های دینی اصلا نبود یکی از عزیزان میگفت قبل از انقلاب ما دنبال یک کتاب درباره معاد میگشتیم به سختی پیدا میکردیم دروردن معاد که یکی از اصول دین ماست یک خاطره دیگرم باز نقل کنم درباره امام موسس صدر اولا امام موسس صدر با امام خمینی فامیلی سببی دارند فامیلی سببی دارند خاندان صدر با خاندان امام خمینی وصلت دارند فامیلی دارند این یک نکته نکته دیگر این که از امام خمینی در همون اواخر قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه پرسیده بودن که شما انقلاب کردید اگر پیروز شدید حکومت تشکیل دادید شاه رو ساقط کردید کیو نخست وزیر قرار میدید کیو رئیس جمهور قرار میدید امام خمینی گفته بود همین آقاموسای صدر همین آقاموسای صدر سال 56 یا 57 امام میگه که ما آقاموسای صدر رو می کنیم رئیس جمهور یعنی ایشون یکی از گزینه ها بود یکی از نامزدهای نامزدهای بود که در ذهن امام و در ذهن جریان انقلابی بود که ایشون بعداً رئیس جمهور یا نخست وزیر ایران بشه و بازوی امام بشه ولی خب امام موسی به دست قذافی در لیبی به شهادت رسید بعدا یاران امام موسی که جنبش عمل در لبنان باشند یه عدهشون رفتن حزب الله لبنان تأسیس کردند یه عدهشون مثل شهید چمران آمدن ایران شدن وزیر دفاع امام شدن بازوی توانای امام و بعضی از دوستانش مثل شهید بهشتی هم که رئیس قوه قضاییه شدند و الی آخر